نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی تو پی که خلوت رازی و دیده بر سر راهت به مردمی نبفرمان چنان بران که تو دانی بگو که جان ضعیفم ز دست رفت خدا را ز لعل روح فضایش ببخش ازان که تو دانی من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم زروی کرامت چنان بخون که تو دانی خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است حسیر خیش گرفتی بکش چنان که تو دانی امید در کمر زرکشت چگونه نبندم دقیقه ایست در آن میان که تو دانی یکی است ترکی و تازی در این معامله حافظ حدیث عشق بیان کن بدون زبان که تو دانی خیلی من, من بخونم زبچ اینجا نسیم صبح سعادت نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی گذر به کوی فلان کن آن زمان که تو دانی تو که خلوت رازی و دیده بر سر راه هد. به مردمی نبه فرمان چنان بران که تو دانی بگو که جان ضعیفم هم دست است و خدا را ز لعله رو فضایش به از آن که تو دانی من این دو حرف نبشتم چنان که غیر ندانی است تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی ایال با باما حدیث تشنه آب است از خیش گرفتی بکش چنان که تو دان امید در کمر زرکشت چگونه نبندند دقیقه ایست نگاه را آن میان که تو دان یکی از ترکیو تازی داری محمد حافظ حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو پس غزل کاملاً پیداست که خطاب به شخص یه برو گذار کن به فلان فلانکرست و اینجوری به پناموارین رحمه ای سپاس به کسی نوشته, نوشته شده با شهنه نزوم داره اولش نظر من خطابه یعنی میگه ای, ای نسیم صبح ساعتم نسیم صبح ساعتم بدان نشان که تو دانی نشان جا همون نشانیه یعنی آدرس گذر به فوی فلان کن بران زمان تو خیلی مثل این که خاجه توجه داره که این مطلب آشکار نشید این مفتحش. این از که میگه که اشاره چند جور اشاره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 دیگه بر سار راهت به مردمی فرمان. چنان بران که تو دان پیغام چیه بگو که جان زعی تنزده است را. خدا را خدا را یعنی برای تو راه اصلا نمیتونم بگم یعنی برای اصلا خود برای است راه در پهلوی اوده به معنی سبب با یلا میگیم چرا دیر آمد؟ یعنی برای. به چه سبب؟ به چه سبب؟ بر جواب میگیم به یعنی به سبب برای حرف اضافه میکنیم، به اضافه را. پناهار این گاهی را مستقلن اصلا محنی برای خوادی جان ضعیف هم هستم خدا را. یعنی برای خدا ز لعل روح فضایش به بخش روح فضایش این شینش برمیگرده به خود خواد و یعنی از لعل روح فضا او را ببخش از آن که تو دانی یعنی بگو که, یعنی که جان ضعیفم هم زده هست اینجای جمعه تا. خدا را یعنی برای خدا ز لعل روح فضا او را ببخش این شین اینجا خیلی جاش دقیق و توجه کن ز لعل یاش ببخش از آن که خدا. یعنی از فضا او از که خودت قبلا گفتم و و اکسید و الیمینیومه. رنگش هم به مناسبت اکسیدهای دیگریست که درش هست یاغوز یه قدری پر رنگتره و قیمتش بالتر لال ال... یه قدری کم رنگتره یه قدری قیمتش هست ولی یکی هست برزم کلمه لال یعنی سرخ و لاله یعنی گل قرمز رنگ این لاله های سفید و زرد و القلنگی رو هنوز هولندی اختراع اختیرانه که در اون روزه اون روز، اون روزهای قدیم لاله هرچی درمیعته سرخ بوده و همین دل میگفتن لاله یعنی گل سرخ بود لال جواهر لال نهرو لال یعنی سرخ بازر راویفندی محله هستن اونست که لالکورتی بهش میگن این چون فکران هندیه هیچ کزونش هندی نیست لالش لاله کورتی هم همون خورت هست و همین پیراهان لالکورتی یعنی پیراهان سرخ هست ذلع المستضع اشاره به لعبت بتری چه بگن لعل ل چه بگن لب, لب در هر دو صورت تشبیه لب است به هر یعنی گاهی اضافه مشبع به مشبعون به گاهی اضافه هم به مشفعی ولی هر دوش یک چه بگن قد سر چه بگن سر به قد هر دوش اضافه قد به سر هیچ وقت اضافه سر به قد کسی ز لعل رو فضایش ببخش از آن که آنم اینجا زمیر اشاره است صفت اشاره نیست یعنی جای اسم نشسته، آن یعنی از اون من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانه دیگه من اینو مهرمانه کردم من این دو هفت نوشتم چنان که غیر ندانه تو همزه روی کرامت کرامت یعنی بزرگ باید اینجا. تو تو همزه روی کرامت چنان بخوان که تو دانی یعنی پیشت مهرمانه بموزه گفتن که یه داستانی داره خرجنزان ملک که حالا داستانش دراز نمیخوام اینجا بگم دست بالش از مال دنیا توی بود احوائل خدمتش و چند ما امور یاد داشت رجوع میکنن این تنها نیاره برای اینکه دبیر وقتی خاصی بیاره تو امورات خالچی داشته و باید چادر خوبی داشته و وسایل مرتبی داشته که ندشته باشه و با اصلا واهمه نمیگیره یه بار دیگه بهش پیشنهاد میکنن این دیگه میگه که من فکر کردم که اگر این دفعه نرم دیگه اصلا دوران خدمت اداری من با نه داشتن خیلی بود دار. مراحت رفتم بیرون شهر دوی محصود ای بود تشستم دراکت نماده حاجت کندم و گفتم خدای آفتن اگه اگه نرفت بیگه حاجزان باید از قدم برسه وجود نمیگذره و حاجت من روا کن میگه تو این حرفا بودن دم که گدای کوری آمد و به اول اونجاها گشت و بعد گفت کسی توی این هست؟ میگه من فهمیدم که پاستای زید. چیزی نگفت گفتم که آمد و کورمال کورمال دور مسجد گشت و به نظرش آمد کسی نیست و بعد برای بست وقتا ما اومد یه جا رو کند و یک در آورد و خوش کرداری کورتلا بود و به با اینا بازی کرد و یک خودش و چیز کرد و در چندتایی همش اضافه کرد و نکرد و بعدم خوزه رو دوباره درست کرد و چال کرد و یه میگه من خب طبعه عاجبتون دار خاجه نظام هاش میگه من اینو با عنوان قرص البته از, از اون گدا از کندم و خوزه رو برداشتم و رفتم پروی لبازه می خریدم و رفتم و رفتم خیلی که خاجه بعد میگه که بعد از یه مدتی اون گدای کور رو دیدم جایی که خاجه خوال نشته توی محفلی ادهیم دورش بودن اینا در چادوری بوده یا تاختمونی بوده به هر حال گداه میاد اونجا گدایی کنه و بعد میخوان بنزنش بیرون اینا اشاره میکنه که نه کاش نه میاد باشیم یا دو چیز میکنه و بعد خاجه میگه که راستی اون خوزهه فاری گداه دست میکره میتسته میگه دوست نفیده مردی که چگاه رو کنید برو بهم شد بلا هم این حرفا حاجه هم اشاره میکنه بایشتش بیگه از روزی که این کوزه از من دوزیده شد این کوزه حالا من که رجبش بایش که با از این ماجه ها دو نفر میشتر خبر نزیده یکی من که هیچی نگفتم قدرت خودداری رو یکی همون کسی که برده بناباری باید حاجه میگه من قرصه رو ازیش میکنه حالا قراصم اینه من این دو حرف نوشتم چنان که خیر ندان تو هم ز روی کرمت چنان بخوان که تو دان این کسی خبر نشه از, از طرف تو هم کسی خبر نشه خیال, خیال تیغ تو و ما حدیث تشنه آب است. این زیبایی این بیت در اونجاست که تیغ رو شمشیر عبدار و تیز رو خیلی آب نشید به خصوص در باستان سمک عیار یک کاردی برکشید چون پتره آب یعنی خیلی دید. بنابراین خیال تیغتو و ما حدیث تشن و آب هست این آب یه یه هم داره گوشه یه داره به اون تیر. میگه ما به شراخ تیغ تو درست همون حالتی رو داریم که تشنه برای, برای رسیدن با ها بود خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه با ها بست خیش گرفتی به چنان که تو دان امید در کمر زرکشت چگونه نبند وحیقه ای نگاه را در آن میان که تو دارد اولا میان در شعر حاجه و همسعدی و دیگرون همونیست که ما حالا میگیم کمر میگیم کمران درد میکنه او رو میان و اون که ما بهش میگیم کمر بند اون بهش او میگفتن کمر نبندیزان میان ترخی کمروار اگر خود را بگیرد میان کمر رو ادم با دست من به کمر برای اینکه به مسال برسه کمروان هیچ وقت بهره ای از این مسال نمیداره برای اینکه خودش رو در میانه میداره میان یعنی کمر امروز و کمر یعنی کمروان بعد میگه که چطور در کمر زرکش تو کمر یعنی کمروند آسته و زرکش که نشون میده که باید طرف خطابا مرد جاسنگینی باشه یا کسی باشه و با هر حال امید در کمر زرکشت چگونه نبندم حالا باز دقیقه یعنی چیز خیلی ضریف دقیق یه گهت دیگه, دیگه خواجه این خوب اینو تفسیر میکنی این فرماید که میان او میان او که خدا آفریده است از هیچ حالا این آفریده و هیچ رو این طرف این مصران طرف تو بکنید میان او که خدا آفریده است از هیچ ای که هیچ آفرید ننگشه این یعنی مسئله ایز مسئله نازو باریک که باریکی است که هیچ آفریده ای در این حال یک این هیچ آفریده ای باز نکن میان او که خداکت میان او که خدا افرید است از هیچ هیچ که هیچ آفریده نکن اینجا هم همونه امید در کمرو زرکشت چگونه نباند باغیچه‌ای نگار در آن میان میان گنکار یعنی چه تو دو یکی استوریو تواتی داریم در حرف است عادی است اش بیان کننده اون صفات خود دان این درس اون قصه نوراناس هم زبانی شی شی پیوندی است یار ای بس ها هندو و ترک همزبان ای بس ترک اینجا در, در, در و تازی یکی در هر زبانی میخوایید عشق باشه می خونی؟ عسفن عینک داری؟ اوه. ها کتاب داری؟ نه چون نیک بدیدم به حقیقت به هزانی شیرین تر به شکر که گویم ای خسرو و خوبان که تو شیرین زمانی کشمیه دهانت نکبان کرد به هرگز نبابد خنچه بدین رنگ دهانی صد بار بگفتی که دهم دهنت خام چون سوزن آزاده چرا جمله زبانی رویی به دهم کامت و جانت بستانم پرسند بستان. ندهی نداشم. کامم جانم و بس بستانی چشم تو خدنگ از سفر جان گزراند چشم تو خدنگ سفر جان گزراند بیمار کلیده است بدین سر کمانی چون عشق بی اندازیش از دیده مردم اون راوکی دنی از نظر فیش برایم. من اینو همیشه این بیت مغب اخر رو کشم دو خدنگ از سفارجان گزرانی دیده بودن و اینجا محلوم خانداری سه ناسته بیشتر نایی برده ناسته قذبینی هم درست چه اونجا گزرانه بیا گزرانه بیا گزرانه بیا گزرانه بیشتر من این نطوره به از روی چیزی در موجوانی گزرانی تو زهنم باست پیداست که شخص دیگه، شخص اشاره می کن. احتمال قبی هم هست که شاه شجا احتمال فکر من چند بار گفتم 26 سال از دوران شاعری خاجه در دوره شاه شجا و این درست بهترین روزگار یعنی این پخستگی و کمال شدیشه هبته شیرایی هم برای شیخ خب و اصحاب گفته بوده خوبه باری طولی نمی کشی برای ما هم که هیچی نگفته جز جز در میخانه ببستند خدا ما و بعد باقیش شاه شجاع بوده که دوست هم داشته که زیباییشو ستایش کنند و باز وقتی میگه تو یوسف ثانی هستی نشونه اینه که این پسر مردی گفتند خلاقه توی یوسف سانی گفتن که زیبایی شیش دنگ بوده پنج دنگشو داده بودن به یوسف و یک دنگشو بین همه مردم دنیا اسمت کرد البته این مبالغ هست مبالغ شاهر هست ادالت در شعنش نیست به اعتقاد اشاعر اونا میگن که اون صاحب خلق و امر هر میخواد نیکنه این عدل بر نمیداره عدل خدا رو تو به میزان خود نسنج تخته عدل این فره سر نیست حالا گذاشته از اینکه که یوسف هم خود پششه شد به این زیبایی آمده پیغمبر اکرم فرمودن که یوسف از زیباتر از من بود برادرم یوسف زیباتر از من بود ولی من ملاحتی بیشتر از اون دارم شد گفتند خلاقه توی یوسف سانی چون نیک بدیدم به حقیقت به هزان. یه بیت داشت که من یادم خود رخصار تو تو خودسی اینا هستش تو آینه ی اصرار است که از بیده طبیم خواهمت همه راز نهانی یه چیزی تو هم یادم ولی اینجا نایم شیرین تر از آنی به شکرخنده بید باز با این شیرین و خست و اینا شکر بید. شیرین تر از آنی به شکرخنده که گوگم ای خست رو بان که تو شیرین زمان خسترو خوبانه برزم اشاره به خسترو فردیز که دفت شیرین بوده کرده بعد میگه که تو شیرین تر از اون که من بگم که شیرین زمان شیرین همه روزگار ها چرا چرا شکرم هم. بله بله خسرو پاچهان خسرو اصلا لغب پاچهان ساسانی بود تمام پاچهان ساسانی خسرو اردشیر خسرو شعفور خسرو خوبار خسرو انوشیدوان الاخه و خسرو پهلاویش هست خعوس رونگ هم یعنی دارای نام و آوازه نیکو و رای شهرت نیکو خسرو شیرین تو من بچه ها چیز کمک میکنم به مذار من فسرو ونی شکر که یکی از مساعده چند روزه یعنی زنش دردش میکنه شکر اسفحانی که بهتر بود که نظامی داستان شکر اسفحانی رو در فسرو شیرین نمیابرد برای اینکه شیرین که مراتب زیباتر و دلاراتر و همه اینام بود دم دستش بود فقط میگفتش که من بگی. روایت نظام و خسرو زیر باره نمیرد با بود موانعی داشته نمیخواسته ازدواشه خبر میگه میخوام بریم الواتی پیره مردار جمع میکنم میخوام بریم الواتی میگم قربان که اونجا که ما میدونیم یه خانمی هست در اسمهان به آن شکر شکر اصفهان. اقای خسرو فربید از مدایم را میفته بایی که دوست تا عریفا بزنش نیان خونه شکر به ناشناس و اقا طالب خانوم شکر بود و اونایت گرم بلاخره پذیرانی میکردن بعد یه شب قدمت خانم بوده و صودم مثل که خیلی از خودش خوشش میامده بخوطه خوب چجیلی دیدی؟ شکرم اینکه تو بهتر یکنی فردی بخوری آنکه دهنه خیلی خوشی نمیده بلا فکر این روابطه این رویه شب سال بعد دوباره را می آفده بله دوباره میاد و به شب به سر می و باز چیزی می سال صرف هم ظاهرن کنم توی که کنه بعد باز یه چیزی از شکر می پرسه شکر می که والا این است که من دختارم با مرد رو اند بس نزده و من مهمنایی که میان برای من مستشون میکنم به طوری که چشم اون جایی رو نمیبینه بعد که از کنیزان رو میفرسن سراج خب این باید به شام خیلی هم بر بخوره بلند شده از مداین رافت دومده اسلاحان که تعم شکره به چشه ولی به جایش شیر ستید ولی به عکس میرونه هست این که میشنبه خانم باکرن فوری میگه بیارین دفتر و دستک معذردار و ملا بیارین خانم عرض می هر داته بعد هم بیگه هیچ صحبتی از شکر نیست در تموم میشه بعد شیرین مرجعای عشقش بوده از اون خافشاری تا به به سال خوش را هم میرسید این داستان زشت این مناسبات آمدید که خسروشیرین تقلیدیس از دار داستان سرایی از ویس رامی در ویس رامی ویس رامی زن برادر بزرگشی بعد که شاهنشاه بود و بادشاه بعد هم ماجره های اتفاق میفته که حالا کاری بهش نداریم که این مرد همیشه شوهرش همیشه به این بست نمیده یعنی دایش یه تلست حالا اون شاهنشاه قاتل پدر بی سنبوزه بود بعد زور از تو اجده عروسی میکشم میارش پیرون رو میار وردش میکنه بعد خون این رو اقوطی به این نداشته هم پیر مرد و هم قاتل پدرش بوده خودچون میزده و عرض کنم که ناراحت بوده و گریه میکرده و دایه داشته دایه از زهر و غوفی داشته بهش میگه اگه دست و که دستان زنه خودم میکشم چه میکنم نه. دایه بهش میگه خانم بالاخره تو ملکه یه مملکت شدی چیزی شدی؟ حالا انقدر چیز نکن یه ذره کن یه خودت تنبال کن بعد تصمیم بگیر حالا من کمک میکنم تو رو که چیز بشه این مدتی دست این از تو کلتها بشه ولی به شرف که بعد دیگه از هر شیطنبیه فایین رو بشینی زندگیت و اونان ملکه اونا و رضا به غذا به داره هرکیسی بسمت میداره مثلا دایه که تا موقعی که این تلست بر عرب بگه شوهرم بزن بسته اینه میباره لب رودخونه مرب چال می جای نمناه از غذای فلکی بارون مفصلی مثل این بارون ارهان شمال کالیفرنیا میاد و رو خونه رو میکنه و تلیه اسم همه رو میشروه به دریا و خانم الالعبد به شوهرش بسته باید اونجا بمونه رو بفروسه دختش رو ناکرده برای این احوالات ماجرای عشتش با رامین آغاز میشه بنابراین این عشت نتیجه نمیتونست داشته بشه زن شوهرداره، زن برادرشه ننگ خانواده هست اصلا اصواب رسوایی و بدبختی هست تو خاندان سرطهدی ممکنه خون هردوشون بیخته بشه هزار بدبختی هست و این از بس که بدبختی کشیدن و گرفتاری کشیدن و لیس و زدن و رامین این برون بر بر رفته و یکیم برانبر بررفته اوچه یه دوستی بهش پیشناهد میتونه که آه زن که نیست بلندش رو برو یه سفری بکن مثل این عشقه این از سر بیرون بره این بایه رسوایی تو زنیکارم داری میکشی از بمیبری خواهی تو داری میکشی از بمیبری سراپایی نه همه ننگ و بدنامی و دیچارگیه تو برو تو دنیا بالاخره روی زیبا هست شاید که فکر بیسه از فاطر و رامین میره قدر گورب و دخته ای رو برو به نام گل پس زیبا بوده و خوب بوده و خلا میمال و میاد خانم من ارادتان چونم میگه که نه آقا شما دل تا کرده و بیسه بسر بیسه برون نمیاریم ما کنم بیس رامین میگه نه نه من چیز میکنم خلاصه قرار و قول و همه چی بیزارن و ازدواج میکنه با این برای این که صودای ویس از سرش بری میدونه بعدان نامه برداریم این امسه به که من اینجا با گل زندگی دارم تا بهتره بهتر فکر زندگی خواهد باشه بعد از چندی احساس میکنه که نه گل جای ویس رو در دلش نمیدونه و میذاره میره. میره و میاد طرق ویس رو داستان ادام بدیم این کاملا طبیعی است که ای این صورت و اون عشق بیفرجام فکر اینو بکنه که ای شکلی به زندگی خودش از این سرگرمونی آبارگی و بدنامی و خطر رو برای طرفه <تصفيق> نه راحتش اینا راحت بشن که نشسته هیچ کاری جز عشق و خوش گذارن حرف رو نداره بعد بره شیرینی که صد بار محک زده از تفغاست گلند شده اومده دستر شیرین اونجا مونده به صوده تنها به صوده عشق بسرو اینو بلش کنه برشی کار استانیجو بگیری این قصه به تقلیل از قصه گل و برداستانیجو خیامی صافته شده و بعد خیلی خدا بیا حضرتش دورت گرد و اول بار این مطلب پتره شد برام دکیر صورتگر سر کلاس سخن سنجیم سال اول دانش که دارد بیاد آن فرمود که این, این داستان خوب نیست داستان شکره اسفانی داستان خوبی نیست و بهتر بود که نظامی نیاره بر هر اینا همه همه اینا رو تو این ده جمع کرده شیرین تر از آنی که شکرخنده به گوگم شکر ای خست بره خوبان که تو شیرین زمان تشبیه بد ببین دهان و تنگ دهانی رو چقدر زیبا بود تشبیه دهانت نتوان کرد به خونچه هرگز نبود خونچه بدین تنگ دهانی ست بار بگفتی که دهم زندهنت باز ته زمیر مفهولی یعنی زندهن تو را از آن دهن تو را کام میدن صد بار بگفتی که دهن زن دهنت کام چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی حافظ خیلی اشاره داره بگیه سوسن ده زبانی شد شکل زبانی بله. تشبیه ظاهر شد ز مرگ صبح قدانم که سوبسن آزاد چه گوش کرد که بعد ده زبان نموزان صد دار بگفتی که دهم ده زند دهنت کام چون سوبسن آزاده چرا جمله زبانی یعنی حرف میزنی و عمل نمیدن بدهم به تو جانت جانت بستان خیلی بیت زیبایی مثل عور خوردن همه کلمات دونیم مسرام مسرام تکرار شده با این حال در نهایت زیبایی گویی بدهم جاماتو و جانت بس تانم ترسم ندهی بامم و جانت بس تانم چشم تو خدنگ از سفر جان بزرامد اگه که قضیه این است که رخت رخت است که شوم بش هم سبک و هم فوق لوده باشه. چون که تیر اگر سنگین باشه بهنماه هوا جلوشو نمیتونه. وقت سبک بش. و اگر سبک باشه و محکم نباشه به معنی اینکه خورد هدف خورد بشه خودش میره. از حرکت یه دفعی میست و سکون طاقت یعنی که چوب کم میخوان و ثبوت این مال درخت خدنگ و هم تیر خدنگ هست هم زین خدنگ هست برای اینکه میدونید که زیر زین هم یه چوب بندی داره شما اون شرم رو میبینید و اون هم که نگاه میکنید آستری داره که میفته رو پشت هست ولی وسطش چیه که نمیدین وسطش یه چوب بندی داره که قرار بگیره روی خوش. و این چوبا چوب خدنگ برای اینکه سبک باشه و محکم باشه اون زینم میگن زین خدنگ ولی وقتی که صحبت سفر بشه اونا بگن خدنگ یعنی کیه دیگه چشم تو خدنگ از سفر جان گزر آمد بیمار که دیده است به دید این سر سخت کمان هر چی که مکمتر بسته می شد بازوی طرانات های می خواست که این تا گونش بکشی و این یکی از علاهم بود که میمید توی شهری گفت این کمان من هرکی میتونه بیاد بکشی اگر می اگر نمی تونستن اون شهر بکشن کمان اون رو گفت حت بدید که من در شما سر آمده این از که سخت کمان برنی آدم زوراور و زورمند و پیرندازی دره یک برنی که کمانش خیلی سخت بیمار وقت چشم معروف به بیماری دید. چشم حالت خماری که داره چشم رو با زیبایی توصیفش میتونم به بیماری گفت در مدعای دو بیمار پرو ماند قدیده چشم بیمار کسی دل بیمار کسی برد. چشم تو خدنگ از سفر جان گزرانی بیمار که دیده هست این چون عشق بی انداز میشه از دیده مردم آن را دمی از نظر برام ای <تصفح> چون چرا یک نخوام با با <تصفح> اسمشو هم نمیدونه هم هم کتاب دارای روان جاوی روان که روانه به معنی مرگ یه معنی مرگ انا هوشه روان ا روان یعنی دارای روان و شاهنامه در شد مورد شاه بیشتر در مراسم دو کسی اوند جلوش یه به دو شاه ها انونشه یعنی انونشه باگی یعنی تخلص. در جلسه پیش بود دویا. یه غذل دیگه بود که تخلص نداشت و دوستان پرسیدن که آیا این تنها غزل یعنی همه یه غذلی که تخلص نداره گفتم من نمیدونم حالا جوابش هست که نه همون یه غذل نیست غذلهای دیگر هم هسته تخلص نداره اونجا یه بیتی درست یا درست کردن یا خود حفظ ساخته بعد خوش نایمده انداخته حفظشی تو یک فکر دیگم دارید بله، راه تو حافظ شو قلم کرد ز سر پای, ز سر پای چون نامه چرا یک دمش از دول نخواه یک داشتنگی نیست قلم از سرش رو میگه و میگه که می حافظ مثل قلم با سر اومد به طرف تو با سر بیاد به طرف تو ولی تو مثل نامه ایچ فکر رو نمیخواه عزمون زیبایی و پنج هوا خواه تو هم جان رو میدم که میدام که هم نادیده میبینی یا هم ننوشته میخوام ملامت او چه دریا میان عاشق مشهور نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی بیفشان زلف و سوفی را به پابازی و رقص آور که از هر رفعه دلقش هزاران بط بیا گوشاد تار مشتاقان در آن ابروی دلبند است خدا را یک نفس بنشیم گره بک پیشان ملک در سجده آدم زمین بوسطنی یک کرد که در حسن تو چیزی یافت بیش از طوق انسان چرا افروز چشم ما چراق افروز چشم ما نسیم زلط خوبان مباد این جمع و یارم تم از باد این پریشان عیش شبگیری که در خواب سهر بزر ندانی قدر وقته اگر وقتی که درنا ملول از همرهان بودن طریق فاروانی نیست بکش دشواری یه منزل بیاده عهد آسانی خیال چمبر زلپش فریدت میدن حافظ نگر تا حلقه اقبال نامکن نجنبه منزل و خوشبایی منزل و اصلا می منزل وزگمان میکنم تطاب شاه یکی از دلائلش اینه که میگه نادیده میبینی و ننوشته میخوانی و این اشاره است به نمیدام حدیثی یا مسئلی که ارباب و دوبله ملهمون به دولت الهم میشه ابتاله الهم بخشون سیاه و موساد و کاغبه و این که میرسونن غذای رو ثابت بهشون الهم شد حال نادیده رو میدیدن ننوشترم میخوندن هبا خواهد تو هم جانا و میدانم که میدان که هم نادیده میبینی و هم ننوشته میخوان این وصف فقط برای ارباب دولت کردن عرباب دوله دو چه دریا بد ملامت کون چه دریا میان میا عاشق و نبیند نب چشم نابینا خصوص اصرار پنهان آقا یه علبه. عیب جویی از دیگران و از سرزنش کردن دیگران اینه که آدم از عیب خودش قافه از یه مدتی که این عادت زشت رو پیده کرد باید فکر میره خودش که عیب ندرست این مردمان که اون یکی دو زوینکی سه زوینکی نمیدرم آخر اینه که میگه چشمش نابیناست اینه آدم از دیدن عیو خودش گفت که سعدی میگه که موجه میرفت تو خونهش یه نرخه رو دید بازنش به هم نشسته باد و فریادش پلند شد و افتتا سرسدا سعدیدی از اونجا گذشت گفت تو برای اونجا فرق چه دانی چیزی که ندانی که در سرایب کیست حالا ملامتگو هم همینطوره کلامت چه در یابد میان عاشق و مشروب. نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی بیافشان زلف و صوفی را به پابازی و رقصاور که از هر رخه دلقش هزاران بود بیا ظرف بیاشان که سوفیی بیاد و شروع کنه تو از هر صله خقش هزار بود بود که لازم نیست یه چیزی باشه بود از پارچ در تو منانمر شد در جای هزار آدم آدم پول زن مقام و هزار چیزی ممکنه بود آدم و شیفته و دیوانه ای او بشه آدم میگه صوفی ظاهرن دعوی پریدگی از دنیا و انقطاع از دنیا رو می ولی تو بیار سر نشاط، تا ببینی که از هر پاره دلقش چند تا بود می این مقصودش همون دل بستگی که او به دنیا و مسائل دنیا بیده روح وعنی بسله هست وعنی تیک پاره است و این که اشخاص رفعه ای خدمتون عرض کردم برای شکست نفسی است یعنی پار کاغذ بکرست گوشاد کار مساقان، بران ابروی دلبند است. اولان گوشاد و بند دلبند. تو ببین که این گوشاد ماستاره، این گوشادان. نونش افتاد، ماستارم ورق خام بشه. نون مستری افتاده، گوشاد با نیم گوشاده. بشارت کار مشتاقان در آن ابروی دلمند خدا را یک نفس بینش گره بخشود مشان یک لحظه آرام بگیر اخفتان باز کن این مشتاقان پرشون گسادید این که از کردن برای چیزه چه استرا اینجا خیلی اغراق شاعرانه هست ملک در سجده آدم زمین بورستون تو در. که در حسن تو چیزی بیش از طوق انسان البته اینکه خیلی حرف زدن پیغمبر اکچه هم است که من نبودم مثلا زمین آسمون اینا خیلی قد نمیشوند لولک لما و باز حدیث داریم از که کنت و نبی گیرند و آدم ها بین الماء و تین. من پیغمبر بودم و آدم هنوز میونه آب و گل بود. یعنی هنوز درست نشد به هر حال اینجا خاجابه دارم که ملک وقتی که آدم رو سجد مرادش زمین بوس تو بود زمین بوس هم از استراحات درباری است توازه های بشه پاکشاه که در حسن تو چیزی یفت и сейчас тур इंसान тур сахар чёк यानी асаб इंसान бад ну и пришёл и был в этом дурном дур хоп немжет им базар сам я аварам там шуде так что siadty dida. Ale in چشم ما نسیم زلف خوبان است بعد این جمع را یارب هم از باقی پریشان اولا که قدیم فکر کردن که چشم خودش یه نوری داره هنوزم میگن آمه ناس میگن چشمم کم سو شده چشمم کم نور شده به حال این که چشم خودش نوری نداره به دستگاه اسمی سپرگین اکاسی و تصویر چیزها تو این هم از اجایبه تصویر اشیا به صورت واجبون منعکس میشه اونجا ولی او آدم عادت کرده که اونها رو جد مستقیم بگیم برحال چراغ افروض چشم ما یعنی مایه نور چشم ما نسیم زلف و خوبه نسیم زلف خوبان باعث میشه که چشم ما روشن به ماه من این جمع را جمع زلف میگه من باید این جمع را یارب تم از باد پریشانی یعنی امیدوارم که این جمع از باد پریشانی تمی نداشته بشه عیش شب که در خواب سهر بودد ندانی قدر وقتی دل مگر وقتی درمان دریقا عداد تهستر و توجع تا این آخرش تهستر یعنی اظهار حسرت توجعم یعنی اظهار درد از بجع یعنی در دری غایش شبگیری شبگیر صبح دودو میگن وقت هنوز هوا تاریکی صبح شده ولی هوا تاریکی و همین دلیل نمشه کن شبگیر دری غایش شبگیری که در خواب سهر بزر که ما نرسیدیم به اون عیش شبگیری خوابیدیم. در خواب سهر گذاشتون وقتی که می‌شد عیش شبگیری رو کنید یه جای دیگه هم باز حافظ داره اشرت شبگیر کن یعنی وقتی سیفیده صبح خوش بگذارد بیت آدم نیست متاسم طریق عیش شبگیری که در خواب سهر گذاشت ندامی وقت وقتیده مگر وقتی که در آدم درست علی حقیقتا تو ادم قدر ساعت ساعت ساعت هر که به طالب نمیدونه مم. مگر وقتی که فرصتش تنگ بشه و در بعد که اگر چهار روز وقت داشته باشم حالا هلا سلام فرمی حالی که روزه داشته و تلنفره. ندانی قبر وقتی دل مگر وقتی که در مان از همراهان بودن طریق کاروانی نی کاروانی نسبت یعنی اهل کاروانی جو بفرمه که حالا هنوز الان با تیارت که میرن ایران مثلا فکر خیلی که خیلی اصطناشون ارکدو خیلی سخته و خیلی زحمت بشتن دیگه باید اون روزگاری که باید پاتر و شطر و هستان نرفا بود راه بود از گزد و منزل بود از گزنده بعد باید, باید این بارشون هر شب ببندن هر شب باز باید بگیرن به خوابن گرفتاری زیاد گفتن و دیم که از سفر و قطع افان من سفر سفر تیکه از جهنم اینه که در چنین وضعی همه در وضع سخت و دوشوار هستن دیگه ایراد گرفتن از دیگری و نمیدونم بهانه گرفتن اینا هم مشکلات رو زیادتر می این است که بهتر آدم اینطور نباشه یعنی خوش سفر باشه در هر جده. و میدونید که گفتن که اخلاق آدم دو جا خوب معلوم میشه یه جاش سفره که وقتی مسافرات بکنیم با یه کسی معلوم میشه چقدر آدم حاضر خدمت چقدر کار میکنه چقدر مراقب دوستانشه چقدر و حرف حفظادنهاشه چقدر تحمل سختی داره اینا اینه که میگه که ملول از همراهان بودن طریق کاروانی نیست به دوشباری منزل به یاد عهد آسانی وقت که از این اون بر راهای مصفر خیلی سفر را بزر بخش و به هر حال این سفر دشوار رو که انتخاب میکردن برای این مدید که یا آسانی به حسانی و قصدی داشتن وگرنه که را نمیافتدن یکی یاد اون عهد آسانی دوشباری منزل رو هم قبول کن و تحمل منزل یعنی محل فرود آمدن و گفتم چند شاید که معمولا شش پرسنگ از هر منزلی به منزلی و اینو پیاده یا سواره البته نبه تا وقتی به حال عوضی می یک روز رو 6 فرسنگ که می کردن و سرواز پیاده رو هم وقتی می گردن راه تشکیلات و پنگامون بساتش سی و شیش کلومتر نعیار راه پیماییشون دیدر بیشن این البته مال جاییست که راه سهل باشه یعنی راه نسبتاً همگار باشه وقتی راه دوشبر باشه مفکنه از این سفر هر حال منزل محل فرود آمادن کاروانیانه و اون بلاهایی که دارن در این منزلها که دوز بهشون بزنه و سایر مسائل بکفه بکش کشواری منزل یا میرسان عب بود برای خوردن نیست نمیدونم روغن برای چراق افروختن و روشنگ کردن منزلی چراق روغن چراقی نیست اما دو که این شاره شدید خیار پس پیشم که ندارم هست. خیار چمبر زلفش بس میدار دیگر تا حلقه ای اربال نممکن چمبر یکی از چیزایی بوده که حالا رسن و چمبر هست و ملک دامه به هلمان یکی از حلقه رو ساختن دام و به کار می رفته می گه چمبر زلک معشود کیالش دروف داشت که او دست نمیده کسی این نگر تا حلقه اقوال ناممکنه جنبانی مالک کسی دیگری هم هست اونها پس کنیم گرام جان میکنم اینجا نشتراش بله تضمین مسراییست همین نگر تا حلقه اقوال ناممکنه جنبانی تضمین مسراییست از قطعه از انوری که مطلحش این است اولین نگر تا حلقه اقبال نامکن نجام بانی سلیم و عطله لا بلکه محروم و مسکیم بعدا نوشته بقیه قدعه انشاءالله در حواشی آخر کتاب زید خواهد شد آخر کتاب حواشی برای اینکه یه میرزو فرهنگ گفتا کتابتون 400 صفحه شده قرار دادم 400 صفحه بیشتر نبوده اینه که این 672 صفحه سه شد چی میکنیم من اولی که سال تو اینا بودم 22 این چاپش بیست شد, شد نسخه غزمی بعد برخوردم به این جاها رفتم تا ایک ناقصه میسه بردم پیشی کتاب پروش که نواله همه شرمی که همه <تصفح> هم همین جور بعد ها فهمیدم که بر. و بعد یه حقایی رو میدم یه،, یه کتاب چپ کرده در دیران کتاب پروششم الان یادم نیست حفظ همین حفظ مرمون قصمی و غنی رو اینان به صوربی چپ و حروبی کرده چند تا فهرست بهش اضافه که از, از فهرستای فسیار مفید و هرچه معروم غزوینی اون حواشی که نوشته بود در جهر مختلف که مجلبه یادگار اون پرست منتشر کرد این ها که نریم همه اون چیزایی را که معروم غزوینی درباره باره نوشته بود که در حقیقت همین حواشی گذاشت تموم اون خفر اسم <متصف> کتاب فروشیش هم شاید کتاب فروشی اساتیر شاید حالا انشالله قرمه بعد یادتون باشه که به من بگید که من مشخصات یادداشت کنم اگر گیریتون هر دوست داشتین میتونین اون نسخه رو بخرید خوبه نسخه خوبه به هر حال این مثله نگر و حلقه اربای مهمم که نجنبانی ما لا انباريده. مثلا جو اينجا من نميدونم نه. نه. نه. ممکنه که نهان با اقسام اینجور چیزا باشه ولی به هر حال دیگه حلقه اقبال ناممکن نجنبانی یعنی دنبال چیزایی که به چنبر زرفشم اشارهی داره بله، اون چنبر زرف اشاره میکنه دانه دانه به دام فقط می آفدید دانه یه چیز قبولی می و مواظر باش که به دام نایست حلقه اقبال ناممکن نجنبانی یعنی اون اقبال ناممکن نجنبانی رو باید بدیم که مانایی که داشتن از اون چمبر از دفاعی بردن بله بله بله بله بله بله فوقکشان چمبری دستان می دستان بله یه نوع مار کشونگن چمبر مار اغلب هم ناخیر معروض قزینی یه نوشته بود بان متن تحویل شده آخر دادو گزارش چاپ کنه که قرارداد میشه کتاب چاپ 400 صفحه مسن که تو قرارداد که 400 صفحه بیشتر نشه و این افتاده واسه اون به دیتا داره نگارش مثلا و اینا که دنبال این کار نبودن بوده که همه ککی ها و زکی های هر, هر وزیری متوجه این بوده که خاطر مروکانه ازش راضی باشه حالا خاطر آقای غزمینی ناراضی شد که خیلی مهم نبود این است که بعد دیده که گفت آقا چهار تا سخط تموم هست. و خط مرمون زرین خط است او یا یکی از رفقای من که متحد تو کتابونه ملی سپار می کرد گفت که این هواشی رو به همون خاطر بر خطی از آوردن تو هجه از داشتن دوشتن و نوشته شده بوده حتی باقید نه بودم تراک بکن و بوده اونجا سارمی مثل این که. نه اون جا داشته ده اون حافظه من دارم ده ترغنی نسخه حافظ گرفته بود کتاب روشه معرفت شیراز و از روی نصفه قدسی نوشته شده اون نصفه گرفته بود داده و به صحاف لای هر برگیشیه برک بعد هرچه راجب اون صفحه حافظ مطلبی داشت این روی این سفیده به خط خودش نوشته پسرش سیرو سقنی این کتاب رو به همون صورت چاپ یعنی یه برگ غزالا هر پسیل برگ یادداشته دکر غنی بعضی سطحاش هم سفید کنده و مهم نبوده که ای شخصی چخصی به همون صورت چپ کرد و لط کرد یه نصفه هم من داد که من داد بعدها آقای سارمی اون یادداشته دکتر غنی رو به صورت یک کتاب جدارگانه در که اونم من الان دارم اینا هیچ کدومش مربوط به یادداشته من اون همین. نیست مثلا هم رو این برمند اینجا فرموده که بر حواشی آخر کتاب میاره بل. این غزل که من الان میخونم یکی یک از غزل که من از خیلی نوجوانی دوستش داشتم و به خاکر دارم و داشتم اینا. خیلی بزرگ و یعنی طولانی غزل سیزده وقت را غنیمت دان انقدر که بسوان حاصل از حیات جان این پدانی تادانی کامبخشی گردون عمر در عوض دارد کن که از دولت داد اشت بسوان پند آشغان بشنو و در بازار که همه نمی ارزب شغل عالم ازمان پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت با طبیب نامهرم حال درد دنها. با باغوان چون من زینجا بزگرم حرام ازباب یار بجای من سروی غیر دوست اینسا با دعای شبخیزان خیزان ای شهکردهان مستی وار پناه یک اسم است حافظ علیه یوسف عزیزم رفت ای برابران، راهنی پس غمش عجب حال دیگر چند ها شکن اینقدر که سودی را جنس خانگی باشد همچون لعل رمانی مانید می و از خون خب می چیز می روی. جانم جانا هر ساعت برو مان دلز که چشمت گوش داشتن لیکن ابروی کماندارت میبرد به پیشانی جم کن به احسانی حافظ پریشان را ای شکنجگی تو مجمع پریشانی زاهد پشیمان را دو بابه خواهد کشت اقلا مکان خاری فبرت پشیمان گرد تو فارغی از ما ای نگار سنگیم دل حال خود بخواهند گفت پیش آتفستان این آتفستانی ظاهرا برد باشه و این روش آفزی که یه بار ارز کردم که نه این, این کلاس نگفتم آفز روشش این بوده که غزلش رو میصافه تخلصشم میابرده بعد یک بیت یا دو بید یا حتی اکثر سه بید زایی سه بیت، در مده اون مندوش میبود برای اینکه اگر کسی دلش نخواسته باشه، بیت های مدهانیگاه داره بزنی از این قاعدش و خیلی به ندرت از این قاعده تخلق شده که بیت مده اومده بالایه. ولی معمولا اینطور. اینجا این همین چیزی که حاصف سانی بعد جلد را شاکش که سالیان دراز وزیر شاکشتان <تصفح> وقت را غنیمت دان انقدر که بهتوانی حاصل از حیات جان این دمه هست تادانی تادانی عدات تحذیره. یعنی موازفه توجه بکن حواست جمع و اما حاصل از حیات ای جان این دمه است یه بیتی از عربی منصوب مولای متقیان علی ابن عبی طالب که ما فاطن مذا و ما سیعتی کفه این قوم وقتن بین العدمه اون براف گذاشته، کام. با اونی که میخواد بیاد کو. نمیاد. برخی، با این فرصت بین دو آدم رو، آدم گذاشته و آدم آینده رو مختنام داشته. این همینه. حاصل از خیاطی جان این دما فاجعه. این یک نفس نبزه تو دست داده گذاشته که گذاشته آینده شمیش که نمیدونه چه وقت راقا انقدر که بتمانی حاصل از حیات جان این دمان تا دانی کامبخشی گردون امر در عوض داره چیزی که از عمر گران بحفر دیگه نیستش که اگه بیا این بگن آهاتون هفتاد سال عمر هم می کنیم مثلا سی سالش رفته چل سال دیگهش مونده این چل سال یا چی میخوای خواهی در مقابلش؟ تمام گنج های اگه به طرف دن می من وفید نباشم ولی این همینجور دقیقه دقیقه ثانیه ثانیه، ساعت ساعت روز روز به مفت می بازه و هیچی در برابارش نمی تا وقتی عجلش کنید یک قصه ای داره مثل این کمال پولو محسن فیضه در مصنبی تاقدیس یه تراری از اهل دوان دوان اسم چهریس بوده در پارس یک پیلسوف محروفی هم داره جلال الدین دوانی جان یکی یعنی ترار از اهل دوان رفت با دفتان برقالی روان پس بودن برقال گفته یهوش من گردکانت را هزاری گو بچند گفت این گردوار هزاری چند گف هزاری مثلا گف گفت سهبتاش چند گفت سهبتاش یه تا ده. گفت دهتاش چند گفت دهتاش یه ده. تا گفت, ده. گفت یکی شند گفت یکی قیمتی نداره گفت خب پس اگه قیمتی نداره یه دونه قیمتی نداره بابش پس گفت فرمودم که یه گردو قیمتی نداره خب بالی گفت گفت یه دونه قیمتی نداره بابش برای که گفت به گفتش که هماره کجایی گفت باشد مفتن من در دوان شهر مولانا جلال نکتدان تو رو ای دوزد ترار دقل دیگری را ده فریب از این عجل بعد نفرین بر جلال دین تو پونمون این نکته ها تو تو میخواهی همین جوری به تراری از من یکی یکی مالمون ببری قصه اینجا تمام میشه. بعد هتاب می‌کنه به خاننده میگه ای تو که طرز بقال دکان بی‌بهاتر عمرت از ده گردکان اگر کسی بگه تا این آن رو بیا انقدر انقدر بگیر با بده تو می‌گه هر چی بدیم من حاضر می‌سن بگم ولی تررار زمان این رو بله این سال سال مارکز، ماه هست ماه مراکله از روز هست روز ساعت هست ساعت ها دقیقه ها و ها اینا رو یکی یکی یه یک دونه،, یک دونه یک دونه از میگیره و تا هم هم راحت اینا رو میدیدی تحبیل بدونید که اصلا نفست برده <coughs> میگه حد اقلی که این کامبخشی گردون حد اقلی که از تو بخواد عمره که در عوضش میخواد کامبخشی گردون عمر در عوض برد کن که از دولت دابعش بستان پس وقتی که حد و تو رو میگیره این میده پس سعی کن که از این حد اکثر استفاده رو بکنید یه شاعری گفته که روزی هر روز از یزدان گرفتن مفت نیست میدهد روزی ولی از آم روزی یه میگیره یه لحو نون فنیر بدنید تو دلتن خوشه که امروز بردنید کامبخشی گردون عمر در عوض دارد جهد کن که از دغلب داد اشت بستانی بهت بعدم در تعیید همین مطلقی پنده آشغان بشنو و از دره طب چین کین همه نمی ارزد شغل آلم تان گرفتاری این دنیا که بالاخره بعضی که همه این کار کردی باید بذاری و بری انقدر ارزش نداره که تو خاطر خودت رو شکسته بکنی و ملول بکنی و ناراحت بکنی برای شغل این حالا پیش زاهد از رندی دم مزن که نطفان گفت با طبیب نه محرم حال درد پین زاهد که نمیتونه رندی رو به اون نباید بگیر زاهد راه به رندی نباید معذوبه عشد باریست که موقوفه هدایت باشد باز مال خوی آفز رند رو خاجه نمونه نمونه اصلیش شخص خودش میگه یعنی یه آدمه همه جا سر کرده یه، همه سراخو گشته یه، همه مردم و ملل و نحل رو به محکی تجربه زده یه، از همه اینا سر خورده این میشده رند رنده رند عالم سود را با مسلحت بینی که کار ملک هستم که تبدیل تعمل بایده یا خودش میگه که هرکسی کسی نمیتونه به مرحله رندی برسه فرصت چمرتریقه ی رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس عاشقاره نیست اینه که کلمه رند رو که پیش از حافظ معنی آدم بی سروپا و لات و لومپن برای اقیقت به کار میرفته حافظ یه معنی تازه بید. اینه که میگه که از رندی پیش ظاهد من نزن برای اینکه با طبیب نامحرم از حال درد پنهانی خود رو نمیگه باغ شما چون من زین جا پوچ دارم حرام من سر غیر دوست بنشام که اینجا که من هستم اگه رفتم فقط سر به غمت دوست بینشان با دعا و یه شبخیزان ای یکی از خصوصیات که میگفتن که پیران اصلاح روشنبین سوفیه داشتن این است که دم هممت داشتن و این هممت را اگر به را سعادت کسی یا برای برد که کسی می این اثر میگذار و و هم بر مکن تا توانی دلی که جهانی به هم برمکن. این همونه. یک ای با دعای شبتیدان ستیزه مکن برای که خاتم سلیمان اون همه اثری که داشت که جن و انس و بحش و زیر فرمان سلیمان بودن از برکت یک اسم بود که روی این انگشتری کرده شده اسم اعظم الهی است من را جبه اسم اعظم یه بار حرف زیاد زدم حالا دیگه تنباله <تصفيق> پناه یک اسم است فرخم استوریخان اسم اعظم یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی کس از عجب دیدم حال پیره کنم اشاره به قصه یوسفه در قرآن کریم می فرمد که بعضی یوسف یعقوب بکتر آقای یوسف مبتلا شد اتاقی ساخنان بیتول احسان رفت اونجا و انقدر گریه کرد که و بگذت عینا ها من الهزن و هوا کذین چشماش از گسته سفید شد و او بازم گسته خودش رو به کسی ابراز نمیکنه کمشکن نمیداند اینقدر که سوپی را جنس خانگی باشد همطور لعل رومانی اولاً جنس رو را به کالای ممنوعه و اینا هم میبیند که از زوره خاجه هست به هر وینو تجا کنه و میگن جنس چی دارید جنس هشیش و هشیشه اون وقت هم, هم میگه کمشکن اینقدر نمیداند که سوپی جنس خانگی داره شراب جای داره شراب خامنگی ترس مختص برده به روی یار به نوشی مفنگ نوشانوش اون غزل بر مرد شهر شجوع جعافظ به خلاف طریقه همیشه گیش اسمشو اول غزل برده سهر زعافظ قیبان بسیر مجده به گوش به دور شهر شجوع می دلیش به اونجا هم شراب خامنگی ترس مختص برده به روی یارد نوشیم و بانگ نوشا این جنس خانگی همونه جنس خانگی داره همچون لعل رومانی رومان یعنی انار لعل رومانی یعنی لالی که به رنگ دونه های انار می روییو مجگان از خون خرم می روید این مجگان رو به خنجر پشت می کنه می تیز میرادی جانم ترسانت پرو مانی چیز تیز بجای جایی سخت که بر بخوره پرو میرادی همونجا میمونه میرادی می گمشگان از خون خلق میریزد تیز میرادی جانم ترسانت پرو مانی دلز نوک چشمت گوش داشتن لیکن ابروی کماندارت میبرد به پیشان گوش داشتن به محافظت کردن ناوک یه نوع بود شبیه جوالدود تو زن بزرگ می داشتن تونهی خود برای برا زبان کبوتر اینا تیر ناوک بشمی من دل رو از ناوک چشمتون محافظت کردم اما ابروی کما، کماندار گفتم یعنی تیرانداز روی کماندار میبرد به پیشانی پیشانی کردن یعنی پرروی کردن و بیشرمی کردن و به زور چیزی رو گرفتن و اینجا بکنین اونا من باره اینجا اینا رو که. بله مرحومه مدینی اینجا درشت و همچه از بعضی شنیدن که مراد از جنس خاندی هشیشه است ظاهران به کلی باهی و پیاساس و جنس خیالات همون معتاگین به این گیاه باید باشید جنس خانگیری میگه که همون چهر و خانگیرم چهر و خانگیرم،, خانگیرم ترس منتصف کردارم اینجا چیز کرد. و هم ما میگه گوش داشتن به معنی نگاه داشتن و محفوظ داشتن و محافظت کردن برهان و بها رجع خاجه در غذر دیگر فرموده داور دین شاه شدا آن که کرد روح قدس حلقه هم داشت گوش ای مل کل مرا مرادش بده و از خطر چشم بدش دار گوش یعنی محافظ سعدی گوید برقصیده بسید دارمت شیراز به ذکر و فکر و عبادت به روح شیخ کبیر به حق روزبهان و به حق پنج نماز که گوش دار تو این شهر نیک مردان دار یعنی محافظات بدست ظالم و بدین و کافر و غمان و نیز گفتند دونان نخورند و گوش دارند گویند امید بهک خورده روزی بینی به کام دشمن زر مانده و خاکسار مرده عرض کنم که و مورد پیشانی هم که پیشانی به شوخی و بیشرمی و سخت و قفت و صلافت هست. برهان و بار عجب سعدی گوید نشاید برد سعدی جان از این دار مسافر تشنه و جلط مسموم چه تا به آتش می نیارد تو آتش می نیارد چرا باید که پیشانی کند مون جایی که آهن بر محول آتش تا پنجره مو نرا دوشو زیاد کند سعبان گویان قمزه و چشم تو شوخ آمدند تا آمدن تو به پیشانی از نشان بسا مولاگی گویان راستا ما سو بر راغ اوش خاص کجا از شرم از کجا ای خاص بر شرم حیا انگام تو برای این پیشانی کردند با به پیشانی بردن یعنی با فردو جمعی جمع کن به احسانی حفظ پریشان را ای شکنجگی سوگت مجمع پریشان این دیگه چیزی نداره زاهد پشیمان را زوغ باقی خواهد کو. وقتی که خورد می‌فهمه که ای داد اون پنجه سال قبل ما زایه کردیم زاهد پشیمان را زوق باده خواهد کن آقلا، ما کاری پشیمان روشن تو از ما، ای نگار سنگین دل حال خود چه خواهن بود؟ پیش ها شست بود هسته نماشیم مرسی چه اصده با. با. <ص cooper> <f verdi> <sa Gilbert> <grimpar> خوش خیلی خوشحال شدیم ما گل هم خوشحالیم در پدرم خوب به بارگرد. بارگرد وقت اینجا من یه پاکت داشتم برای شما مطبا